بنامه خداونده بی انگازه مهدبان نهایت باره قسم به با اعصبهای غازی که در حین تاختن جرقه های آتش می و باز به با حمله برندگان صبحگاهی که از اثر تماس سم سمخیش به زمین و ببار یا جرقه آتش بالا می کنند و با آن در قعر اجتماع دشمن در می آید. بیگمان انسان بر پروردگار خود ناسه پاس است و خود بر این گواه می باشد و بیگمان با سروت علاقه شگیری دارد آیا نمی داند هنگامی که آنچه در گورستان است برنگیخته شود و آنچه در سینه ها آشکار شود بیگمان در آن روز شان و اعحال ایشان کاملا آگاست